کبیر قونیه رمضان 643 قونیه اسیر پنجهای ننه سرما بود روزی که از خانه بدنام فرار کردم میگفتند سردترین روز چهل سال گذشته بوده کوچه پس کوچه ها پوشیده از برف و قندیل های یخ آویزان از لبه بامها مثل خنجر تیز و برنده بود. زیباییشان خطرناک بود. وقت ظهر چنان زمهریر شد که گربه ها توی کوچه ها یخ زدند. دهانشان باز مانده بود و سبیلشان به سوزنهای یخی میمانست. خبر رسید که چند خانه کهنه زیر بار برف سقفشان فروریخته. بعد از گربه ها بی های قونیه هم سهمشان را از زمهریر گرفتند توی کوچه ها جسد های یخزده پیدا شد مثل بچه توی رحم مادر خودشان را جمع کرده بودند توی صورتشان تبسمی محسوس پیدا بود انگار میدانستند به جایی خوشمنظرتر و ملایمتر میروند. بعد از ظهر وقتی همه خوابیده بودند یواشکی از اتاقم بیرون آمدم. چند تکه رخت را بخچه کرده بودم و همراه خود میبردم. آن همه لباس زیبا که برای جلب توجه مشتریهای خاص خاص می کردم، آن همه اسباب زینت را گذاشته بودم و داشتم میرفتم. اموال آن خانه باید در همان خانه می ماند. وسطهای راه پله رسیده بودم که دیدم مانولیا با حالت زار و نظار جلوه در اصلی ایستاده. داشت معجون افیون را که معتادش شده بود می مانولیا از همه زنهای آن خانه پیرتر بود. مدتی بود از گرگرفتگی گرفتگی شکایت داشت. شبها صدایش را میشنیدم که توی رختخواب آرام و قرار ندارد. زنانگیش در حال خوشگیدن بود. دخترهای جوان با حالت نیم شوخی به او میگفتند خوش به حالت مانولیا. به تو حسودیمان می شود. دیگر نه درد سر عادت داری، نه حاملگی، نه بچه انداختن. اما همه به خوبی می دانستیم که تایفه روسپی پیر که بشود بدجوری پیر می شود. روسپی پیر و مریض است با روسپی مرده. تا مانولیا را دم در دیدم، فهمیدم دو راه بیشتر ندارم. یا باید به اتاقم برمیگشتم و فکر فرار را از سرم بیرون میکردم یا اینکه مستقیم به طرف آن در میرفتم از میانش میگذاشتم به دنیای بیرون قدم میگذاشتم و عواقبش را هم تحمل میکردم. دلم دومین راه را انتخاب کرد گفتم: سلام مانولیا چطوری خواهر بهتر شده ای؟ مانولیا اولش لبخند زد اما تا چشمش به بخچه افتاد خنده جایش را به حیرت داد کلک زدن فایده ای نداشت رئیس خونسا حتی قدغن کرده بود از اتاقم بیرون بیایم چه برسد به این که بخواهم پایم را از خانه بیرون بگذارم؟ این را مانولیا هم میدانست. مانولیا پشپشکنان گفت: می روی؟ چیزی نگفتم؟ حالا نوبت او بود که انتخاب کند یا جلوم را میگرفت داد و هوار راه میداخت و همه را خبر می کرد؟ یا این که میگذاشت بی سر و صدا را هم را بکشم و بروم مانولیا گفت برگرد به اتاقت گل کویر خونسا کل شغال را میفرستد دنبالت یادت نیست دختری را که سه سال پیش میخواست از اینجا فرار کند چه بلاهایی به سرش آوردند حرفش را ادامه نداد دوست نداشتیم سرنوشت تلخ سرمایه‌هایی را که پیش از ما اینجا بودهاند به یادمان بیاوریم. وقتی می‌خواستیم درباره ها صحبت کنیم، اسمشان را نمی‌بردی. می‌گفتیم لا اقل توی قبرستان راحت بخوابند. زندگیشان که سخت گذشته بود. دستکم پس از مرگ به آرامش برسند. گفت، گیریم که توانستی فرار کنی، بعدش چی، چی میخوری، از گروسنگی تلف میشوی، بند خدایی هم پیدا نمیشود که به امثال ما کمک کند. میشد نگرانی را توی چشمهای مانولیا خواند اما یک دفعه فکر عجیبی مثل خوره به جانم افتاد. شاید از این نگران بود که نتوانند بگیرندم مدت زیادی بود که اینجا کار میکرد عمرش را اینجا هدر داده بود حالا اگر من میگذاشتم و میرفتم و زندگی را از نو شروع میکردم کاری را کرده بودم که او اصلا فکرش را هم نکرده بود. آزادی من به نظرش سنگین می آمد. چون جرأت کرده بودم بروم هم حسودیش میشد، هم از دستم دلخور بود نگران شدم اگر در آن لحظه صدای شمس تبریزی که می گفت نترس در ذهنم تنین انداز نمی ممکن بود برگردم گفتم منولیا خواهرم بگذار رد شوم. به جای اینکه یک عمر اینجا بمانم، بیرون از اینجا کم زندگی می کنم، اما مثل انسان زندگی می کنم. از روزی که بیبرس کتکم زده بود، چیزهایی درونم از بیخ عوض شده بود. دیگر ترس نداشتم. بالاخره یا این طور می شد یا آنطور. برایم مهم نبود. میخواستم هر چند روز که از عمرم باقی مانده وقف خدا بکنم شمس تبریزی حق داشت ایمان و عشق جسارت آدم را زیاد میکند. هر دوی اینها اوهام و وسوسه را از دل انسان می‌شویید و پاک میکند. تازه تازه منظور شمس را میفهمیدم. قسمت عجیب ماجرا این بود که مانولیا هم فهمید چقدر مسمم هستم لبخند زنان و غرق در فکر به صورتم نگاه کرد بعد آهسته کنار رفت و راهم را باز کرد گفت موفق باشی گل کوی. کارهایی را که ما نتوانستیم انجام بدهیم انشاالله تو انجام میدهید